حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه به تر بلک هوادارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با دل ببندیم از که دل به سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پسفردا نجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پسفردا سلام علیکم حال احوالتون چطوره خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ یک هفته دیگه آغاز شد یک رادیو پسفردای دیگه برو بریم شاعر نفوزیمون این هفته سروده الا ای رهبر ضد نفوزم دارم از غصت اینجا میسوزم سوزم غم دجمن تو رو بیتاب کرده نفوزش رویاهاتو آب کرده نفوذ اقتصادی اختلاسی زدن بردن به یک شکل اساسی هنر گفتی یو بنمودی کبابم نفوظ معنوی کرده خرابم سیاست هم خودش اصل معماست عجب این رهبر فرزانه تنهاست یه روز فتنه بود و امروز نفوز دل فرزانهمون بعد جور میسوزه. با تشکر از شاعر فرزانمون با توجه به این که خب مود امنیتی نظام مقدس از فتنه به نفوز تغییر کرده و ما هم خودمون اصل نفوذی هستیم اینجا این هفته رو کلان میخوایم درباره نفوذ حرف بزنی حالا شاید تونستیم تا آخر هفته یا همه منافذ موجود رو ببندیم بر نفوذ یا همه رو واز کنیم و خلاص خب چه خبره؟ یه هفته دیگه باز شروع شد و ما با یه موضوع تازه برگشتیم دیگه. به هر حال بله جان. نه کسی نیست. خودمونیم. کسی نیست اینجا. اون هفته پیش بود دیگه رفتن، دخترا رفتن. فقط من و جلال و سامی و شهرامیم. بعد دیگه پسرا هفته دیگه میان. کارآموزان یعنی برندگان لیگ رادیویی که دوتا تا آقایون باشن، مرسا و سعید هفته دیگه هفته این هفته نه هفته بعد سیویل پارتیه. بله. هفته پیش گفتم که اینی که قشنگ درست کنیم پاتونو راحت راحت خب چی میگفتیم آها داشتیم راجع به موضوع میگفتیم این هفته میخوایم در مورد چیزی صحبت کنیم که این روزها مسئولین و مقامات کشوری و لشکری دائما در حال جمله هم باش یادتونه مدرسه میرفتیم دسته کلمه میدادم میگفتن باش جمله بسازیم الان هم یه کلمه دادن به مسئولین و اونا شبانه روز در حال جمله سازی با اون کلمه هستن مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوز اونی که ممنوع است اینه. مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر اینکه دم از مذاکره و گفتگو میزنن برای نفوذ است. یه ادعی در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره ساهلندشی می بله اون کلمه‌ای که گفتیم چیزی نیست جز نفوذ. این هفته ما می‌خوایم ساهلندشی رو کنار بذاریم، یه مقدار سخت اندیش بشیم. کلاً نفوذ رو در دستور کار قرار بدیم و در موردش صحبت کنیم. دیگه میدونیم دیگه شب و روز دارین از رادیو تلویزیون در موردش میشنوین، دیگه حالا این هفته هم روش دیگه چی میشه مگه؟ پس همین ابتدای کار سلام و مخصوص ارزمیکنیم خدمت همه اون برادران و خواهرانی که مثل دیوار بتونی در برابر نفوذ همه جانبه دشمن ایستادن و مثل یه گل محمدی اجازه نفوذ به هیچ بنی بشری نمیدن. البته این وسط هم یه دستن که میگن اینا توهم و مگه ما چی داریم که دشمن کلن کار زندگی خودش رو کرده میخواد به هر طریق ممکنی بهمون به نفوذ کنه و نمیدونم ما خوشگلیم خوش اخلاقیم اصلیم چیم اما... اما ما نباید به اینجور حرفا گوش بدیم امریکا هیت خلط نمیتونه بخونه میدونی چرا امریکا ما الان خودکفا شدیم سن تا دا دانشمن دایما دا ترو کردن و تایی چی در خاطر اینکه میخوایم روپای خودی ممو دارستی یا نه؟ اینا همه این جیرانیه تختیه آمریکا، اسرائیل، اروپا. به خاطر اینکه شما خود شدیم. شده ایم. این جیرانی، سه در به خاطر آمریکا، اسرائیل اون خانوم همکد طرفدار شاهه. بدم دام کنیم که از اروپای اره من یک نداریم. لایک از هر نداریم. به دیو خود کردیم. ما در حال توی... توی... توی... که جهان از ایران حساب می‌برند. روبای خود می‌مشاهدیم. میشه شاه باشه نه نیستین فهمیدی به خاطر همین ما الان توی پول درسته یا خود جیرونی هست اون خانم و اینا این سقطپتیج داره ولش کنه هر پاشه از من به حزب الله بیاین آقا طرفدار شاه نباشیم حرف یعنی کلا خلاصه اینه یعنی بیایم طرفدار شاه نباشیم و این هفته هم چی بچه حزب اللهی دور بریم سراغ نفوذ که از قافله مسئولین عقب نمونیم سام یختر ببن ببن یختر ببن آقا شما آبشونه کم آقا تو نداری چی تو هم شهرام جم مثل بدتر از منی خلاصه خود خل... میخوام یعنی بگم این هفته اینجوریم یعنی تو این مایه هایم، یعنی همه یا یقی آخوندی تو کرده میریم ب... که طرفدار شاه نباشیم بریم داستان این نفوذو ببندیم کارشو تموم کنیم بره پی کارش برو بریم آقا برو سلام فرشید جا من پادی هم از سیدنی Buffalo. سیدنی آفتابی بوس بوس خدافز کف چیز یعنی خوش بگذره بهتون دیگه چیکار کنم دیگه چی بگم الان اینجا ما داریم گخ میکنیم اونجا میگه آفتابی سیدنی خوش بگذره دیگه بله حالا که بحث آقا هوا شد امروز و فردا تقریبا باید بگم هیچ پدیده خاصی رو نداریم تو کشور از دوشنبه کم کم بال شد توی حش خلیج فارس شروع میشه یه اتفاق دیگه ای هم که میفته بازم افزایش آلودگی هوا تو شهر بزرگه پس اگه تو شهرهای بزرگ زندگی میکنین کار زندگی هم ندارین یکی دو روزه رو این از مساعد بودن هوا استفاده کنیم بزنین بیرون چه میدونم اگه تهرانین برین لباسوندمماونون ورا مشدین که طورقب و شانیز برین طرف ما ششلی کم بزنین بهبا بزنیم. اگه اسفهانین دیگه برین مثلا سمت جاده شهر کردون ورا مطمی میدونم خواه همه کار زندگی دارین اول هفته است جمعه نمیتونیم بخونیم و گفتم حالا شاید بتونن مثلا برن و اینا کمتر غبار و آلودگی هوای شهر رو استنشاخ کنم بد کردم بد گفتم ببخشید چرمنده دیگه نمیشه سلام فرشید جان خاصه خوش میگم به تو همه برای بچهای رادیو پس فردا از کنم خدمتتون که به. هفته پیش یه مطلب گفتیم که تو اون اشاره کردین به قبایل بدوی آفریقایی. بله بله. الان خبر رسیده که توی آفریقا یه تظاهرات خیلی بزرگ به پا شده و این قبایل بدوی آفریقایی اعتراض کردن که چرا به اونا توهین کردی شما؟ یا لوسخویی کن دیگه. یا الله، دی بابا بدوی که دیگه توهین نیست دیگه بدوی یعنی مثلا به صورت ابتدایی مثل انسان‌های اولیه زندگی میکنن دیگه بابا اصلا ا... ا... کجا رادیو دارن که پشنفن من من چی دارن؟ می رادیو پس چه می دونن چی به چی آقا آفریقا آن به چه زبونی باید اصخایی کنیم ببینین با کن با دا با من مخلصون با بیخیالون بی با فلان شوخی بودون با شوخی بودون با اصلا ملت احساب ندارن آقا این چه زندگیه اوه یه خودو بگو کار داریم او یه بگو کار داریم دیره آبجی خانم‌ها آقایون دختر خانم‌ها آقا بسیار دقت بفرمایید خودتون رو کنترل کنید چون میخوام الان یه صداهایی براتون پخش کنم که یه خورده چیز دیگه. اذیت نکنید خودتون رو آروم باشین نفس عمیق بکشین. یه صداهایی الان قرار پخش کنیم. یه خودتون ممکنه عصبانیتون کنه این صداها. این صداها مربوط به مسابقه دیروز تیم‌های تراکتورسازی تبریز و سیاح جامگان مشهد که توی ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شده بشنوین این صداها رو لطفا میگن که این اقدام زشت و نابجای این آقایون تماشاگر در اعتراض به برنامه فیتیله صورت گرفته آقا بامزدست واقعا یه اشتباه توی برنامه ای که تعداد زیادی از عوامل اون اهل آزربایجان هستن. صورت گرفته. عوامل حالا کاری نداریم چی شده. عوامل برنامه مذرت خواهی کردن. اخراد شدن. صدا و سیما رو اصلا اعلام کرد غلط کردیم. هر مقام مربوط و غیر مربوط دیگه ای هم بود اومد گفت دوستان معذرت می بیب خوردیم. اعتراضات خیابونی صورت گرفت، تجمع کردن، زدن، بردن، تو های اجتماعی مطلب نوشتن همه این اتفاقات شد و تموم شده. بعد تازه رسیدیم منجا که یه سری آدم اونم میشن میرن استادیوم داد میزنن، خلیج بعد یه سری دیگه اونور جوابشون رو میدن عربی. که مثلا پوز ها رو بزنن. مثلا الان آقا جز تاسف و سر تک... سر حیرت گونه دادن، واقعا از دست کسی کاری برمیاد. الان کار باید بکنم؟ یعنی واقعا یه سری آدم هستن تو مملکت ما که سطح در فکرشون در این حده که ما حالا بریم خلیج فارس رو بکنیم خلیج عربی تا مثلا لج فارس‌ها رو در بریم چه اونا تو برنامه فیتیله مثلا یکی یک کاری کرده وازه همه میگم اخراج و اینا هم که بوده دیگه تمام شده رفته اما فاز این دوستان ما نگرفتیم مثلا من نمیدونم چی باید بگم الان شما هموطنان عزیز شما چرانده خوب هر جایی که هستی بهمون بگید جوابتون بینا چیه تا جایی که ما عقلمون میرسه ایران با اهالی غرب ساکنین شرق مردم استانهای مرکزی شمالی ها, جنوبی ها و جزایر خلیج فارس همه با هم در کنار هم دست در دست هم معنا پیدا میکنه ایران اینجوری معنا پیدا میکنه ما والا دیگه چیز دیگهی بلد نیستیم ای خلیج Mmm. -hmm. سراغ رادیو شماری جمهوری 934 امروز شنبه 3 آبان ماه 1394 اون یک تکرار برنامه رو میشنوند یک شنبه اول آذر ماه میشتون که دانلود میکنن این برنامه رو میشنوند هر موقعی ممکنه صدای ما رو و این برنامه رو بشنون میریم سراغ فوبای جمهوری اسلامی از نفوذ دژمن منافزی آماده جذب فرهنگ غیر داره غربی شما شماره 934 بدانید و آگاه باشید که بسیاری از رجال کشوری و لشکری که این روزها از عواقب نفوذ فرهنگی غرب به ایران نگرانند خود سمره نفوذ فیزیکی و فرهنگی دیگری هستند که هزار سال پیش اتفاق افتاده اما آن را نفوذ به قلوب ایرانیان نامیده و نسبت به آن بهبه و چهچه چه کنندگانند و هر نفوز دیگری را بعد از انقلاب با حمله گلادیاتوری اشتباه گرفته هر شب با کابوس نفوز یکی در یک جای مملکت از شیرین پرندگانند امزام جمعی از همیشه در معرض نفوذ بوده ها و هر فرهنگی که زورش رسیده بهشان یک نفوزکی نموده ها و اصلا خودشان یه پا عامل نفوز فرهنگی های رادیو پس دا، دا، دا دا <تصفيق> مقدس جمهوری اسلامی برای خودش از نیرنگ های دشمنان و دستیسه های استکبار خارجی و حیلگری های مزدوران جیر مواجب بگیر داخلی یه سری تصوراتی داره و سعی میکنه به مردم هم اون تصوراتو الغا کنه یکی از اونا اینه که آقا خانم اصلا کل دنیا به غیر از مثلا یک دوسته تا کشوری که مثل ما فکر میکنن تمام کار و زندگیشونو گذاشتن کنار بیان فرهنگ والا و بیمانند ایرانی اسلامی ما رو بتره کنند بر پیکارش و فرهنگ منحت و منحرف خودشونو به ما غالب کنن یعنی اصلا کشورهای دیگه دنیا کار زندگی که ندارن که فقط منتظر فرصتن یه سوراخی پیدا کنن از اون در ما بیان نفوز کنن فرهنگ ما رو به بیب بدن بر پیکارش با این نگاه الان یکی از استعمارگرترین کشورهای دنیا از نظر فرهنگی همین ترکیه خودمونه مثلا. چرا به خاطر اینکه الان درصد بالایی از مردم شهید پرورمای مائی سرشون رو بزنی مشکل نداره ولی اگه یه کار واجبه اورژانسی براشون پیش بیاد نتونن سریال ترکی مورد علاقه رو ببینن اصلا اون شب خوابشون نمیبره تا تکرارش رو ببینن این معنیش در قاموس مسئولین نظام چه تفسیر میشه بر اساس نظریه نفوذ بگی چه جوری تفسیر میشه اینجوری که ترکیه جنایتخوار هم می‌خواد با این سریالاش فرهنگ والای ما رو بزن داغون کنه ها آیا یکی نیست بگه بابا عمو دایی خاله اچ هستی یعنی شما میگی ترکیه ای هم نشستن سریال ساختن که تو کشور ما نفوذ کنن یا اینکه صدا و سیمای مملکت خودمون با بودجه و درآمد کهکشانی که داره در برابر شبکه های مختلف ماورایی یه بازنده تمام عیاره و 70 80 میلیون تماشاگر بلقوه رو واگذار کرده به چند تا دونه شبکه ماورایی که بودجه و امکانات و نیروی انسانیشون در حد بخش کوچیک از صدا و سیما هم نیست حسولا یکی از کاربوردای علم کردن نظریه هایی مثل نفوذ و فتنه و این حرفا اینه که شما شکست خودتو قبول نمی کنی که هیچ تازه میری میگردی یه سری عامل عجق و عجق هم پیدا میکنی همه تقصیراتو میندازی گردن اونا خیلی هم جواب میده این کار ظاهراً برای عزیزان مسئول ماشین مشکل ماشین مشتی مندلی نه داره نه سندلی یا یه روزی مخواستی بکن به ترخیم اه اه مطافراتی ری شکن شدن اصلا یعنی ما لب سکر کرد هم که میریم یه افتوناب باست با خودمون ببریم آبازو قبل پولین یارو کدا میره زونم نوش. کزا میری داشت بیا نزدیک صداتو تو نمیشتم سر پال تزریش دربست دیگه داشت نه داش اینجا قبل پارک بگه دیگه تو توبانیم دیگه من من دیگه کزا مسافر بزنم تو شک بیا بابا بیا ارزو حساب میکنم بیا پشتم ترافیک شد بیا با دربست ای بابا ناخون خوش یا سمون گوشه خیامون بلرز تو سرمون والا ترافیکم یعنی نفس میگیره به مولا هیچی دیگه رسیدیم به هلو مسافرم بی مسافر بزا بینیم مابا اون ماشینه دیگه چی او او او چه چی چیز عذیب غریبیو لامسله این ماشین این ریسجمهور مموراس برم ظلوم پلاک پلاکشم خارجی مارجیه چقدر سوت میزنه ب می مسابقه فوتباله آه. ماشینو ایوال بابا من سی سال پشت فرمونم هم تین عروسه که تا حالا نهیدم بگو کن همه هم تو توی چفشن ها ببینم این یارو پرایریه میدونه تیه ماشینه دلاش دلاش الو بگو آب از لب و لوتش را افتاده ببین منا سی دلاش الو نوچه ده خیلی ها شما نوچه ده میگم این ماشینه تیه قدیب غریبه داشت تیه بنتی تی؟ بنتلی زون من بنتلی اینه زون تی، بنتلی همون نگه بابا ایوال ایوال دویتگرم بنتلی بنتلی آره بابا میشناختم میشناختم فقط به زاله اواردم آره همینه میدونم شهره بدیم مالا بابا ساعت شلوه آمد سا نگاه ما این ماشین رو عکسش هم به زور میدیدیم و حالا چی آوردن وسط این تهرون دارن سوارش میشن، چند اینو خوالا والا فکر کنم یکی مثل همه زندگیشم بده دو تا طرق اینم نتونه بخره چی بگم والا بعدی رفق برو فقای ما میخواه یه وام بگیرن یه پراید بخرن سی میلیون سه هفته حساب کتاب میکنن ببینن قصدشو میتونن بدن یا نه اون ماشین سوار میشه باش میشه هفتاد تا زبون و فرستاد خونه بخت چی بگم والا الاشکنه اصن چی احساسات زبون مردانم زریه دار شد بابا میخ بریم الان سر بلنزه ایک سوار رفر سوار بکنیم تو سرمالر ارزن ملت اینجوری بابا بریم بریم, بریم بابا پیرهنه <موسیقا> گولی و گولی و گولی تو بدن داری تو شکر شکر شکر شکر تو دهن داری پیرهنه گولی و گولی و گولی من به چند من شیرین شیر، شیر، شیر، شیر تو دهان دارم از حال دل تو دل دل تو خوب خبر دارم من برد برد تو برد برد تو برد کمر کریک مرد دارم چطور به با کریش می می نیکو چشم می کن که دید زدن ثواب نازم همش یه خانم ها آقایون دختر خانم ها به پسر این هفته بهمون بگین نظرتون در مورد واژه نفوذ چیه نفوذ موضوع این هفته هفتهمون نفوذ دیگه بگین نظرتون در مورد واژه نفوذ چیه مثلا بگین تا حالا شده احساس کنین بهتون داره نفوذ میشه حالا چه از طرف دوشمن چه دوست چه آشنا چه غریبه فرق نمیکنه نفوذ داره مثلا بهتون میشه احساس کردین اینم چیزی خودتون تا حالا روی کسی نفوذ داشتین یا کسی مثلا سر کردین به جایی یا به کسی مثلا نفوذ کنین حالا دیگه این نفوزه مثلا برای شما میتونه توی تلگرام باشه یا فیسبوک باشه یا اصلا گوشی موبایل کسی باشه توش بخواین نفوذ کنین یواشکی یا به زور یا هر چی یا مثلا به محلی که اجازه نداشتین برین یا حتی نفوذ تو اعماق دل یا روح و روان کسی این همیشه میشه نفوز این هفته برامون از خاطرات و تجربیات نفوزی خودتون بگید توی فیسبوک نوشیروان گفته به نظرم عکس فرشید خودش نماد نفوزه خیلی هم ممنون لطز دارید شما نفوز من حال در قلب ها از طریق اکسم هم اتفاق میفته دیگه امیدوان منظورتون همین بوده باشه دیگه بله بازم ممنونم از شما خیلی کردی. لادن تو فیسبوک گفته والا من اکثرن نفوزی هم تو خانواده تا حالا کسی به ما نفوذ نداشته مخصوصا نفوز به جاری برای شوراندن در برابر خوارشوهرها یا برعکس انقدر حال میده نمیدونی ولی ایشالله همیشه همینجور نفوذگر و نفوذناپذیر باشین همونطوری که هم ترکی گفتین ولی سعی کنین از نفوذاتون برای مقاصد خوب و صلح‌آمیز استفاده کنین دیگه نه به همزنی و عذیت و آزار و نمیدونم برای شوراندن در برابر خوارشوهر و جاری و اینا بعد کبی گفته چطوری نفوذی توکرتم کوبی خوبی بعد دیگه یه دیگه دیگه ایمیل دادن بانو سارا فرشید هیف این برنامه تموم بشه دیگه خیلی چیزا هیفه ولی خب تموم میشه دیگه کارش نمیشه کرد یعنی هر چیزی یه روزی تموم میشه حتی اگه حیف باشه آقا یه معامله فرشید یه یه قیمتی بزنیم و سر یه پولی بگویید چقدر میشه ما چقدر بدیم این تلفن های برنامه بی... دیگه نخونی اصلا اون قسمت برنامه حال نمیده فکر کنم با خودت هم حال نمیده به خدا آقا اصلا آقایون خانوما چند تا شنونده بیدا آقا 2 نفری 5000 تومان 10000 تومان چه می‌نم بذارید بدیمین همین ما این تلفن رو آیه آیه چیزارو دیگه نمی‌شنویم سر رو همین فرشید پولدار میشه ها بعد مامله‌ای نیستی دیگه به خدا خودت هم راضی مطمئنم آخ اولا که خب پول رو که نمیدین اون که هچ حمجی الکی فقط یه چیزی میگیم بره بچا آقا مشکل چرا مشکل داری با تلفن‌های ما خوب بود الان صدا تو پخش نمیکردم خوب بود نه خوب بود خدایی به خدا قسم اگر خورشید را در دست راستم و ما را در دست چپم بگذارید اصلا حاضر نیستم تلفن‌های برنامه‌م یا را برنامه بخوام محدود کنم یا مسدود کنم یا نگم یا والا اینا حرفا نداریم اینجا والا به عشق همین تلفن‌ها ما اینجاییم دیگه یانجی یه زب شما رو خودت کار کن رو اصابت کار کن مردومدار باش اینجوری آنتی سوشال بودن خوب نیست عزیزم بله الان تلفن‌ها رو میگم خوب بوش کن خوب بوش کن تلفن‌ها رو الان میگم یه بار دیگه بنویس بنویس پسفردا.ترادیوفردا.کام نوشتی این ایمیل ماست پسفردا.ترادیوفردا.کام ایمیل ماست آفرین اینا رو بنویس اسمس دو سف چار و و دو سف چار و پنجا و پنجا پنجا پنج جان نتونستی بنویسی یه بار دیگه بگم باشه اسم های ما صف چهارصد دو 420, 603, 827, 41, 50 و یک پنجا بعد دیگه در فیسبوک گوگل پلاس ساند کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید درمون کامنت بذارید شماری وایبر واتس و تلگرام ما دو صف 37 و در تلگرام کانال داریم در کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید شماره تلفن های ما هم دوسف 420 22 11, 24 133 و 163 این دوتو شماره تلفونه برای اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن دوسف 420 226 21 79 39 نوشتی؟ آفرین پایزه داره تو یه پلیس تو برگرد میزه تو هر چه نورا مسیو واسه من شدی انگیزه پس تو یه پلیس تو میزه تو هر چه نورا مسیو واسه من شدی انگیزه تو رو رو بته او تو کلی مود رو میارم اون میارم نمیریم تو بیر یادت هست سهری به خس و یه روز پایی بود در فویچشم <تصفيق> ما <متصفيق> میارد اینو گوش کنین اینو گوش کنی دادگه. خب، خدا با نهایت افتخار خدمت تو معرفی میکنم معرفی میکنی؟ چیو؟ بگو ملکه زیبایی ایران در سال 2014. بله خانوم مهناز آفرید خانوم مهناز بله پار سال یه چند تا مجموعه ایرانی توی کانادا دست به دست هم دادن یه مراسمی برگزار کردن به نام پرشین بیوتی عوارزه به همین غلظت که میگم پرشین بیوتی عوارزه بله یا همون مثلا انتخاب ملکه زیبایی ایران در سال 2014 توی این مراسم یک نفر از دختره ایرانی شرکت کرده بودن و خلاصه مراسم با همه کمو کاست ها و خوبی ها و زعفی که داشت برگزار شد رفت کارش و مهناز خانوم انتخاب شدن و مبارکشون باشه نکته ای که ما اینجا دنبالشیم اینه که شما در نظر بگیرید که یه مراسمی با میارهای کاملا مقایر با تبلیغات ورزشی تبلیغی جمهوری اسلامی برای ایرانیان درست در اون طرف کره زمین یعنی کانادا برگزار میشه 31 نفر دختر ایرانی به مرحله نهاییش میرسن میرن تو مراسمی که تو کانادا برگزار میشه شرکت میکنن بعد از این 31 نفر فقط 3 4 نفرش از خارج از ایران شرکت کردن. دقت کردی؟ یعنی بقیه اکثرا از تهران و چند نفر از حواشر دیگه. خیلی جالبه یعنی از این 31 نفر حدود 25 6 نفرشون تو ایران زندگی میکنن. تو ایران مدرسه رفتن، تو ایران درس خوندن. هر روز صبح مقنعه به سر رفتن، سر صف مدرسه مگبر آمریکا گفتن تو انقلاب مهدی خومینی ایران نگهدار و اینا زرد دادن. و صدا و سیما و رسانه های حکومتی هم از صبح و شب تو کلشون عرضش های نظر نظام مقدس و نبا دست خالی که با گوشکوب کوبیدن بعد پرورش یافته های این سیستم انقدر انگیزه دارن که بعد های گرفتن ویزای کانادا رو به جون میخرن هزینه میکنن و تهران و انزلی و اسفهان و فلان و این ور و اون ور و تو اطراف ایران و خود ایران و فلان پا میشن میرن کانادا که بشن ملکه مثلا ملکه زیبایی ایران اون بخشش کردن نمیگفتیم نوش جونشون آفرین مادر معاض خانومم بلنده شدن ولی کلان انقدر خوشگل کل بودن حالا خداوکیلی خودتون قضاوت کنین چندین و چند چند تا دختر دیگه توی ایران هستن که علاقه دارن توی همچین مراسمی شرکت کنن اما یا پولشون ندارن که پاشم برن کانادا برای همچین کاری یا ویزا نمیتونن بگیرن یا اصلا حال این همه دردسر کشیدن رو ندارن الان ما این همه آسم اینجا بافتیم که به معظم و باقی مسئولینی که نگران نفوذ رنگی هستن یادآوری کنیم که داداش مرگ من یباش شما اصلا نیازی نیست نگران نفوز پوفوز باشی یعنی اصولا چیزی نمونده که شما نگران نفوزی شدنش باشی خب شما همون فیلتر کن همون پارازیت بفرست همون سانسور کن بعد من تو محلتون تعریف کن که راهای نفوذ نفوزظ دشمنو بستی حالا به قول اون بنده خدا شما میگی بستی اونا میگن بستن و یه خودت میدونی با خودت چند, چند دیگه اینم نمیدونی یعنی میدونی؟ دلیل ما از خود آدمی است که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باشند. سلام بر کامران ملک مطیع نفوذی. نورود بر تو فرشته نفوزی تر. چه چه خبر چه خبرو تو فوزیا چه خبرو ما فست اینستاگرام سایت کردیم فرض جون تو برنامه فیلمای در حال رو معرفی کنیم اما یه فیلمو در حقش اشفاف کردیم که الان یه ماه تقریبا در حال نمایش حالا اجهاف ما به کنار در کل در حق فیلم اجهاف شده کدوم فیلم اجهافش چرا اجهاف چی بوده فیلم بازگشت لوک خوشایند بخشی از صدای اون فیلمو با هم بشنویم بعد من تو رو دیدم بشنویم ببینیم میتونم بگم اسمش کی؟ بازگشت لوک خوشایند فیلمی که در مقابل شما استفاده کسی نیست جز لوکه خوشایند بازگشت لوک خوشایند دام اش تو مشهوب نداری ما بس نداریم دروغ نگو صدایا فرصت آره اینا خیلی بودیم کریم آقامون هم بود نه نه, نه ما اونا بودیم بله بخشی از صدای تیزر فیلم بازگشت دلو که خوششانس شنیدیم این چه عجیب غریب بود کارگردان فیلم کیه اصلا فیلم انیمیشن عروسکیه چیه بازیگراش کیان آن ماجره چی بوده نه یه فیلم کمدی رئال مونتاژ با همه شخصیتایی که موجود بوده در تاریخ سینمای ایران و جهان شروع شده از بهمن مفید بگیر تا چه میدونم کاپیتان اسپارو که جریده پاسی می به هر حال و خود لوک کارگردان فیلم آره آره کارگردان فیلم مجید کاشیفروشان در سه فیلمم بر اساس کارتون معروف لوک خوششان سفتی قبیصی گزارش لوی زدیخی هوش خیرابی بازیگر اصلیش هستن اما اچابی که در حال فیلم شده اینه که اولا تو تهران و ها در کل 10 تا سینما بهش ندادن بیشتر عجب. و بعدم مدیران مدرسه ها از خانواده ها پول میگیرن بابت بردن بچها برای دیدن این فیلم بعد بچها رو برمی‌دارن می‌برن برای تماشای تن... انیمیشن شاهزاده روم که متعلق به حوزه هنریه ای. یعنی اینو می گیرن. پول اینو میگیرن پول میگیرن ببرن اینو ببینن بعد میبرن شاهزاده روم ببینن آره دیگه انجلی میشه اون فیلم الان جدا پرفروشتری ناست دیگه عجب ها این بود پس داستان اچهافش از موسیقی چه خبر کامرا؟ خب فارسیان تا دو هفته آینده کم کم کنسرت‌ها شروع میشه اما بازار انتشار آلبوم‌های تازه فعلاً داغ پنج شنبه گذشته آلبوم آریانا به خوانندگی حمیدرضا خجندی خواننده خوب کرد که از مدت‌ها پیش خبر انتشارش اومده بود بالاخره منتشر شده به بازار اومده بسیار خب ممنونم ازت کامران عزیز باد خدافی می‌کنیم تا فردا و بریم بخشی از یکی از ترانه‌های همین آلبوم آریانا با صدای حمیدرضا خجندی رو مشنویم da negli leggi da far da coda با سلام بیسوه کسی شنبه شب را ضمن تبریک کسب رتبه جهانی 112 توسط کشورمان در زمینه نفوظ و گسترش اینترنت با مروری بر سرخط مهمترین خبرهابی امروز و امشب آغاز می‌نماییم. حمله به سخنرانی یکی از شخصیت های اصلاح طلب در ورامین با گاز اشکاور و پیشمینی کارشناسان که ای همینجوری پیش بره دم انتخابات ایشالله بمب شیمیایی شیمیاهی میزنن تو های این اصلاح طلبان وابسته به استکبال افشا شدن حقوق ماهانه شست میلیون تومانی سعید مرتظوی در هنگام حضور وی در منصب ریاست سازمان تأمین اجتماعی و تغییر نازران از این همه مناعت تب و سابد زیستی مسئولین دولت مورد علاقه مقام معظم رهبریشون و نمایش تصاویری از ملک و املاک بابک زنجانی توسط خودش در دادگاه با نظر جمعی از فعالان عرصه املاک که با این بابک زنجانی خیلی باله اون همه خورده الان میاد با افتقار تو دادگاه اعلام میکنه خوردم اینم سندش مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن اینک مشروع خبرها با همکار خوشلخجم بلی بلی با سلام یک جامعه شناس در مصاحبه و خبرنگاران درباره اولویت بندی های استخدام افراد در دانشگاه های دولتی گفت در حال حاضر اولویت های استخدامی به این صورت است اول مردان متعهل بچه دار بعد مردان متأهل، زنان بچه دار و بعد مجردین در جامعه ما معمولا آقایان به خستگاری خانم ها اگر خانمی فرصت ازدواج پیدا نکند چه گناهی کرده است که نباید در این جامعه شغل داشته باشد در همین رابطه یک از کارشناسان و خوانگار ما گفت اتفاقاً همین مسئله می یک فرصت شغلی برای آقایان هم به بود دا براده وی افسود در این شغل افراد به صورت سوری با هم ازدواج میکنند و بعد که خانم به استخدام دستال دولتی درآمد از هم رو شده هر کسی به دنبال زندگی خودش میرود وی پیشنهاد کرد نام این شغل میتواند برای آقایان شوهر استخدامی یا شوهر شغلی باشد که بر اساس قراردادی، پیمانی و یا رسمی بودن نوع استخدام خانم میتواند دستمزد شوهر استخدامی را مشخص کرده، درصدی را هم به کارشناز پیشنها طرح تر اختصاص دهد، پایان مشروع اخبار، اِ اِت شو های میکروفون طلایی از خودش درامدزایی میکنه که کارشناس کجا بودا خودم گفته بودم اینالو ای... چی بده ما هم به نونی رسیدیم این وسط ای... ای... بابا آخی رسالت رسانه ای چی میشه ببین بلبلو عصب ندارم یه باید یه حرف از رسالت رسانه ای بزنی دیگه نه من نه تو وا چیکمی زنه بچه میوال رسالت رسانه ای پر میچاقه بلبل کلاً نیستین تو واقا آقا بگوی سر همین میاد تو دیره بابا بریم, بریم. بله حواکشون در خدمت کارشاو سامیتی انتظامی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جواب سرحنگ کا سیم تایشان تا ما را در جریان آخرین تحولات این حوزه قرار دهد جواب سرحنگ بل... ما خبردار در خدمت شما بله آزاد ارز می بنده خوشحالم که در خدمتی شنوندگانی عزیز هستم. این سه انجان شنیدیم که جوانی در تهران به علت انتشار اکس های نوامیس مردم توی تلگرام توسط پلیس فتا دستگیر شده. میشه توضیح بل... بدین در مورد این خبر؟ بله باا کنم این سرعت عمل تلاشیم تلاش کارانی من در پلیس فتا واقعا قابل تقدیره. سابانه افتخار می کنم که این عزیزا بلی بلی؟ اینقدر سری تونستن مم. آملی این مسئله را دستگیر کنن بله شاهد بودیم که صدا بله. و سیما و خبرگزاری‌های های دولتی بله بله. شدت این خبر رو پوشش دادن و حتی با متهم مساولی کرد سمت. چرا اینقدر این مسئله برای شما و این رسانه ها مهم شد یه و ببینید ما سرس کنم که ما مم. در این مورد شاکی خصوصی داشتیم ما اونم خانواده خانمایی بودن که در این عکس ها حضور داشتن آه. به همین دلیلم موردو بررسی میکنه ها دستگیرش میکنه سوال دیگه ای که همین الان به ذهنتون رسید سرانججانینه که با این همه سرعت عمل و جدیتی که شما در دستگیری اینجور بله. متهمان نشون اونا رو به دلیل انتشار چهار تا تونه عکس انقدر قوی بله. دستگیر میکنین حالا از اسید پاش اصفهان چه خبره اسید پاشی کجا؟ اسید پاش اصفهان دیگه سرانج شهر خودشه مگه اصفهان اسید پاشی شده خصه نباشی سرانججان ب... دیگه الان دو ساله داره ازش میگذره کجاست اون قدیمی رو دارین میگوی ما. نه اون هنوز بسکر سا عملیاتی پلیسی همچنان ادامه داره من واقعا خسته بله. نواشید میگم به شما سرهنگ یعنی بله. دو سال شما دارید عملیات برگزار میکنید برای گرفتن این یارو ببینی... یه زنی طولانی نشده سرهنگ عزیزی داره. من بالاخره ببینید م... همه عملیات های پلیس شبیه هم نیست بعضی سری نتیجه میده. بعضی‌هام طول می‌کشه تا میگم که چهار تا دختر پسر بل... رقصیده باشن کلیپ درست کرده باشن سه‌سویته دستگیر میشن یه پسری چهار تا عکس منتشر کرده بوده اما پای اسیدپاشی میاد یه یهو دو سال طول میکشه دیگه آره علی... نه ببینید شما اینجوری بهش نگاه نکنید اینا مسائل خیلی حساس پولیسیه خوب خوب. که خیلی با روشون دقیق کار کرد آها یعنی این اسیدپاش بل... رو خیلی دقیق پیگیری می‌کنن چمدگان عزیز من الان اینجا یه لیوان آب هست روی میزم که میخوام از اون برای آقاهی بخشی به پلیس استفاده کنم یعنی چی چی چی میخوش ما این چی از بردادم بله آب بسیار خونکی هم هستن آ, آب, آب تمیزه خودم از شیر اینو <تصفح> آب خیلی ممنون بنده تشنم نیست نه منم هم نگفتم که ایزه بدین آقا عزیزشم آقای عزیزشم آقای عزیزشم آقای عزیزشم چه کاری با چه با چه کاری با باشه خیز کردی آقا من با شما آمدیش چون دارم آقا جو نه ببین سن این بدول... آب بوده اسید نبوده اصلا نگران نباش من به نمایاندگی از کوده ها و یه مردمی این آبا تو به آمد دیگه نیوی انتظامی تا شاید از خواب وا. غفلت بیدار چیدی خودی شما خیلی بیجا بی کردیش ما باقام هماز با شما برخواد کنم نیگاه کن نگاه کن بل. نگاه کن اصلا هم هم خیص شدیست نشین این جاوان من رو نگاه کن یه هول چیزی بده به هم من همه را خیص شدهست من به نمایندگی از مردم ما. ایران بوله رو هم نمیدم تا بیشتر از خواب بیدنشی <تصفيق> ماشالا عیزه بده بندنیشون میدم به شما مرکز مرکز مرکز مرکز از سرهنگ اینجا سو آقا هست شدست به بندنی روی کمرکی بفرستین آقا جو باز این دوباره بیم سرهنگ نیروها و یک اینجور مواقع زود <تصفيق> میان یا دو سه سال تیل میکشه بازم <تصفيق> <تصفيق> شما ساکت باش تا من به خدمتت برسم حق نداری آقا جو از یا تا خاره چی تانی روی کمکی باشه باشه باشه گیرم که من رو حبس میکنی گیرم که به مرکز بیشیم میزنی باشه الوار خیص شده که همه فکرهی ود دربلش میکنن چه میکنی سر همی مجالت بکش آقا جو ساکت باش بگرم همه بشن شدی کونم ها مرکز مرکز مرکز از سر همی بابای دوستم سارا از همون اون بچگی یه وقتای جمعه میرفتم خونشون عادتش بود سر ظهر جمعه بشن سخنرانی نماز جمعه گوش کنه. برای هم انگار از کلاس درس استادی برگشته باشه، روزنامه کیهان و اطلاعات برمیداشت به عنوان جُزوهی درسی مرور میکرد ما که اون موقع بچه بودیم نمیفهمیدیم چه اتفاقی بر برای بابای سارا میفته، ولی خب اون سالی که کنکور دادیم، میخواستیم بریم دانشگاه تازه فهمیدیم چه بلایی سر ایشون مده. کلن به سارا گفته بود دانشگاه نمیخواد بری نمادی از غربه یعنی اون سال این تفری رو به گریه انداخ آخرم رازی نشد بذاره انتخاب رشته کنه بعدم که با وساطت امو و امه و همسایه ها رازی شد سال بعد اجازه بده گفته بود سارا فقط حق داره مهندسی بخونه اصلا هم طرف علوم انسانی و هنر و این چیزا نره که اینا تله های دشمنانه برای نفوز در مغز جوانان سارا ولی لیسانس مهندسیشی که گرفت انقدر که کنچها بود به نگی بره علوم انسانی بخونه این دشمن چجوری میخواد نفوذ کنید تو مغزش رفت فوق جامعه شناسی خوند بعدم رفت کار روزنامهنگاری. تا همین چند روز بیش که اومدن دفتر روزنامهشون سارا رو گرفتن بردن فکر میکردیم کردیم بابای فقط نگران مملکت و نفوذ دشمن نگو نگران سارا بوده تفلی بچه بودیم نفهمیدیم دیگه نگو جوری این دوستمون از سر کنجکاوی رفت تو دامان دشمن ای بابا اما یکی از روش‌های نفوذ فرهنگی توی مواقع پخش مستقیم مسابقات تلویزیونی اتفاق می‌افته یعنی دژمن که ببینه جمهوری اسلامی راه‌های نفوذ ماهواره رو با پارازیت بسته و اینترنت هم کلاً فیلتر کرده میاد سعی کن از طریق آنتن صدا و سیما به مردم ایران نفوذ فرهنگی کنه اینجوری که در مواقع مسابقات حساس ورزشی که در خارج از ایران برگزار میشه و به صورت مستقیم قرار از تلویزیون ایران پخش بشه، عده تماشاگرنما میون تماشا ها قرار میدن که کار اینا اینه که به جای تماشاچه تماشای مسابقه یا چه میدونم با هم ماچو پاچ کنن و فرنشکیز کنن و بزنن و برقصن یا با لباس‌های تحریک کننده و پوششی که مثلا مناسب سونا جکوزیه برهنگی رو ترویج کنن. بعد دوربین به طور متناوب وسط بازی میره روی این آدمهای معلوم الحال و مجول الهویه به این امید که مردم ایران با دیدن این صحنه ها تحت تاثیر قرار بگیرن و فرهنگ والای خودشونو فراموش کنن که خوشبختانه البته خب مقامات ایران هوشیارن شش دنگ حواسشون هست و با دادن تاخیر چند ثانیه‌ای موقع پخش بازی‌های صحنه ها رو با صحنه های جایگزین دیگه میپشونن یه جوری که آب از آب تکون نخوره یعنی یه صحنه ای رو انقدر تکرار میکنن وسط بازی انقدر تکرار میکنن وسط بازی که آدم از هر چی تماشای فوتبال یا والیبال یا که هر چکه زده میشه حالا باز نفوزو تجاوز فرهنگی اگه از طرف غرب باشه آدم دلش نمی‌سوزه ولی واقعاً این, این که مثلا گوام بیاد به ما نفوذ فرهنگی انجام بده خیلی زور داره دیگه تو همین بازی ایران گوام متصفانه گوامی ها که دیدن حریف تیم ایران نمی‌شن راه نفوذ بسته است تصمیم گرفتن که به مردم ایران نفوذ فرهنگی کنن و با لباس‌های خاص مناطق حاره اقدام به رقص گومبا گومبایی در اطراف زمین کردن اینجوری با موزیکا تا همین مثلا بولد شد ما تقریبا نصف بازی رو تصاویر چیز ببینیم تصاویر آیسه تکراری ببینیم بعد همین این شد که صدای پیمان یوسفی هم در اومد بیچاره به از حال عصبانی میمونم ظاهرا دوستان مجبور میشن که لحظه به لحظه از تصاویر جایگزین استفاده بکنن بله. و به همین خاطر برای بارهای متمادی شما میبینید که یک صحنه خاص رو دوستان به اجبار به نمایش در چون نمیتونه این چیزای دیگر رو نمایش بدن نمیتونند. دقایق هم هر چیز به پایان برسه بله. که این سختی کار سختی واقعا. چه سختی؟ نمیتونن خب نشون بدن دیگه نمیتونن آقا این ها و این حرکات گنبا گنبایی رو آفریقایی رو نمیتونن انجام ولی بازم درمه مسئولین گرم که جلوی این تجاوز فرهنگی رو با قطع به موقع تصاویر و پخش تصاویر متفرقه گرفتن و یعنی شاید الان فرهنگیمون تا حد زیادی گوامی شده بود به خدا ما درسمون چون بازه گفتیم این تصاویر رو نشون بدیم دیگه. اون تو خود ما تصویری که شما تصویریش نمی ما تصویرش خودمون تنها می بینیم جاتون خالی. فریبورد هم داره می بینه آلن. فریبورد سلام. سلام, سلام. می جس... میبینی می بینی؟ آره به. با... فقط رادیواییم دیگه. <تصفیح> تصاویر رو نمیتونیم نشون بدیم. چه خبر فریبورد؟ والا ورزش فرشت کلیم بیمار شده. эй بابا یعنی چی یعنی همون مسئله حاشیه‌ای و از این جور حرفا منظورته مثلا همیشه نه دیگه این دفعه بیماری واقعی متولی ورزش آقای محمود بود از وزیر ورزش جوانان در بیمارستان بستری شده به دلیل بیماری شایع بیماری سرطان آره کالوس کیروش هم تو چند روز اخیر و جز خبرهای اول بود ای بابا حالا می‌ذارم همونجوری که گفتی شایعه باشه فقط افشین پیروی فرشید مدیر تیم ملی دیرووس و برنامه ورزشون و مردم شبکه یه گفت که شاید اگه موافق باشید بخشی از طرهای پیروی که انتقاد کرده از شایط سازان بشنیدیم. این خبرو خود منم برام این خبر جدید بود و فکر میکنم همون دوستانی که شایع کردن که آقای کیروش شب بازی میخواد استعفا بده فکر می‌گنم آقای کیروش انقدر حرفه‌ای هست که شب بازی که تیم داره به جام برای بازی مقدماتی جام جهانی میخواد بازی کنه دوستان اومدن این شایعه رو درست کردن داریم می‌یایم توی پرودا متوجه شدیم زدن آقای کیروش مریض سرطان داره دور از جون عجبو خیالمون راحت شد دیگه که این شایعه بده دیگه چه خبر فریبرس تو اهواز دیروز بازی استقلال تهران و فولاد خوزستان بود تو همون دقایق ابتدایی فرشید پخش مستقیم بازی توسط سیما قطع شد تا حدود نیمه دوم جالب بعدش خبر بامزه اومد که یکی از برداران سیما داخل ورزشگاه به دلیل درگیری رفتی با یکی از مسئولان زمین وسط کار دوربین و بنده وسات و ضبط صدا رو جمع کرد و اه. از ورزشگاه رفت بیرون یعنی چه دوربین رسانه ملی رو اونم در حال پخش زنده طرف زاز بغلش رفته قهر یعنی اینو باید یه آره. باشکی بگیم این خارجی ها نشنم فریبورز ها بگذریم آره. بگذریم آره. فریبورز این سامیه کمی حواستش به این ال کلاسیکوه چیه چه خبر از این بازی ها آره بازی داغیه البته داغ که دیگه نیست الان چون نیمه اولش تموم شده نتیجه هم در اومده کلی تدابیر امنیتی بود بازی رال مادی و بارسلونا تو ورزشگاه سانتیاگو و خبر اومده که ماموران امنیتی لایس ساندویچ جای ورزشکاران گشتن تیم اولاً دو هیچ بارسا تونسته تو زمین رال جلو بیفته با گلای سوارز و نیمار به امید واریم این بازی رسیا از حد گشتن لای ساندویچ دیگه جلوتر نره دیگه موقع ممکنه مسئله امنیتی حل شه بعد وسط پیش بیاد <تصحب> ممنونم ازت فیروز غریب باد می کنیم تا فردا تا فردا خدا پغلاده روزنامه ابرار به نقل از معاون نخست وزیر روسیه امروز تیتر زده بود که بخشی از هواپیمای سوخو میتواند در ایران تولید شود. تماما گلگیر عقبی لوله اگزوزی چیزی رو بدن دست ایران دیگه و اینا دیگه سوخو سوخو بهشون نیست اینطوری که روزنامه افکار به نقل از علی اکبر ولایتی امروز تیتر زده بود که ایران ستون فقرات ثبات منطقه است. ها تو رو خدا مثال های اندامی نزنین دیگه نمیشه که شما سری اون عضو خوبه رو بردارین دیگه به فکر بقیه کشوره منطقه نباشین که درستتمون تموم شد امشب هم این هفته با موضوع نفوذ همچنان با شما هستیم امروز روز اول بود تا سه با ما همراه باشید جبران خلیل جبران در تنهایی گفته تنهایی را ترجیح بده به تنهایی که روحشان با دیگری است تنهایی تقدیر من نیست ترجیح من است شبتون خوش زندگیتون پر از همدم هایی که داستان تنهاییتون رو پایان میبن تا فردا. تنها شدم و زندگی از تاب و تب افتاد هم نشدی ما نشدی این نیست من درد تو و منظره خوب تو بودم درگیر تماشا نشدی مسئله نیست عاشق که بشی ساده و خوبی زیبایی مرسوم افتاده و خوبی شب جب که بشی سمت عذابی کابوس رسیدن به سرابی بیداری و عاشق که بشی ساده و خوبی زیبایی و گروبی افتاده و خوبی عاشق که بشی سمت عذابی کابوس رسیدن به سرابی